بخش جهار آنهایی که شایعات را شنیده بودند باید از کشف علایق واقعی فیلسوف لذت شگفت زده شده باشند هیچ خانه بزرگی در کار نبود غذا ساده بود اپیکور آب می نوشید نه شراب و شامش نان، سبزی و به اندازه یک کف دست زیتون بود او از دوستی خواست برایم یک کوزه پنیر بفرست تا بتوانم هرگاه خواستم زیافتی برای خود برپا کنم. چنین بود علایق مردی که لذت را هدف حیات می دانست. او نمی خواست کسی را بفریبد. دلبستگی او به لذت بسیار بیشتر از چیزی بود که حتی متهم کنندگان او به عیاشی قادر به تصور بودند. دقیقا پس از تحلیل اقلانی بود که به پاری نتایج شگفت آور این امر رسید که چه چیزی زندگی را واقعا لذت بخش میکند و برای کسانی که درآمد زیادی ندارند آگاهی از این نتایج مسرتبخش بخش است. بر عقیده اپیکور، عناصر ضروری لذت هرچند مرموزند، خیلی گران نیستند. خوشبختی فهرستی اپیکوری از دارایی های لازم. بند اول دوستی اپیکور در بازگشت به آتن در 306 قبل از میلاد در 35 سالگی نوعی زندگی خانوادگی غیرعادی را برگزید. او خانه بزرگی چند مایل دورتر از مرکز شهر آتن در ناحیه ملیط بین بازار و بندر پیراوس برگزید، و با گروهی از دوستانش به آنجا نقل مکان کرد. مترادروس و خواهرش پالیانوس ریاضیدان، هرمارخوس، لئونتیوس و همسرش سمیستا و تاجری به نام ایدومنیوس که به زودی با خواهر مترو دروس ازدواج کرد. در خانه آنقدر فضای کافی برای دوستان وجود داشت که هر کس کنجا خودش را داشته باشد و اتاقهای غذا خوردن و مکالمه مشترک بود. اپیکور چنین می بین تمام نیکی هایی که حکمت برای مادر بردارد دوستی پر است. دلبستگی او به معاشران همدل چنان شدید بود که توصیه کرد بکوشیم هرگز در تنهایی چیزی نخوریم. پیش از آنکه چیزی بخوری یا بیاشامی خوب ببین با چه کسی میخوری یا میاشامی. نه اینکه چه میخوری یا میاشامی. زیرا غذا خوردن بدون دوست چیزی نیست غیر از زندگی شیر یا گرگ. خانواده اپیکور خانواده بزرگی به نظر میرسید. ولی ظاهرا هیچ تورشویی یا احساس محدودیتی وجود نداشت و فقط همدلی و مهربانی دیده میشد. ما وجود نداریم مگر وقتی کسی باشد که بتواند ببیند ما وجود داریم آنچه میگوییم هیچ معنایی ندارد مگر زمانی که کسی بتواند آن را بفهمد در میان دوستان بودن یعنی همواره هویت خود را تایید کردن دانش و مراقبت و علاقه آنها به ما این قدرت را می دهد که از رخوت و کرختی بیرون برویم در صحبتهای معمولی بسیاری از آنها با ما شوخی می کنند و نشان می دهند که زعفهای ما را می و آنها را می پذیرند و بنابراین به نوبه خود می پذیرند که ما در دنیا جایی داریم می توانیم از آنها بپرسیم اون یارو ترسناک نیست؟ یا هیچ وقت احساس کردی که و منظور ما من را درک کنند نه اینکه با حیرت بگویند، نه اصلاً. جوابی که ممکن است سبب شود حتی وقتی با دوستان هستیم احساس کنیم به اندازه کاشفان قطب شمال و جنوب تنها هستیم. دوستان حقیقی ما را بر اساس معیارهای دنیوی نمیسنجند آنها به خود اصلی ما علاقه دارند. مثل زوجهای آرمانی، اشغانها به ما متأثر از ظاهر یا جایگاه ما در سلسله مراتب اجتماعی نیست. و بنابراین، ما بر سر پوشیدن لباس های کهنه و نشان دادن اینکه امسال پول کمی در آورده ایم دقدقه خاطری نداریم. شاید نباید میل به ثروت را همواره اتش صرف برای زندگی مجلل تفسیر کنیم. ممکن است انگیزه مهمتری وجود داشته باشد و آن اینکه که آرزو داریم دیگران به ما ارج گذارند و با ما خوب رفتار کنند. ممکن است جستجوی ما برای به دست آوردن پول هیچ دلیل مهمتری از تضمین احترام و توجه مردمی نداشته باشد که در غیر این صورت به ما خیره خواهند شد و چپ چپ نگاهمان خواهند کرد اپیکور با تشخیص نیاز بنیادین ما دریافت که قلیلی دوستان واقعی می توانند عشق و احترامی به ما ارزانی دارند که ممکن است حتی ثروت قادر به تأمین آن نباشد بند دوم آزادی اپیکور و دوستانش به نوآوری اساسی دیگری هم دست زدند بدین منظور که مجبور نباشند برای کسانی کار کنند که از آنها خوششان نمیآمد و برای اینکه مجبور به ارزای حوض های بلغ و آنها نباشند خود را از اشتغال در دنیای تجاری آتن کنار کشیدند. ما باید خود را از زندان امور روزمره و سیاست روزمره رها کنیم و چیزی را شروع کردند که بهترین توصیف آن زندگی اشتراکی است. و در ازای استقلال زندگی ساده تری در پیش گرفتند. آنها پول کمتری داشتند ولی دیگر مجبور نبودند از فرمانهای اربابان نفرت‌آور پیروی کنند. بنابراین، باغی نزدیک خانه خود، کمی خارج از دروازه قدیمی دیپیلون، خریدند و برای استفاده روزمره خود سبزی‌هایی در آن کاشتند. احتمالاً بلیتون یا کلمپیچ، کرومیون یا پیاز و کینارا یا جد کنگر فرنگی مدرن که نسحت بلکه ته آن خوراکی بود رژیم غذایی آنها نه شاهانه بود نه مصرفانه ولی خوشعت و تم و مقفی بود همانطور که اپیکور به دوستش منوسیوس گفت فرد حکیم نه بیشترین مقدار غذا بلکه لذت بخشترین آن را انتخاب می کند سادگی بر احساس شعن و مقام دوستان تأثیر نمی بذاشت. آنها با جدا کردن خیش از ارزشهای آتن دیگر خود را بر مبنای مادی ارزیابی نمی کردند. نیازی نبود از دیوارهای برهن خجالت زده شوند و فخر فروشی و تظاهر به تلاسودی نداشت. در میان گروهی از دوستان که خارج از مرکز سیاسی و اقتصادی شهر زندگی می کردند، کسی ادعایی به معنای مالی نداشت که ثابت کند. بنده سوم تفکر معدودی از درمانهای استراب بهتر از تفکر هستند. با نوشتن مشکل روی کاغذ یا حرف زدن از آن در مکالمه اجازه می دهیم های اصلی آن ظاهر شود. و با شناخت ماهیتش اگر نه خود مشکل ولی ویژگی های آزارنده سانویش یعنی گیجی و سردرگمی، جابجایی و تحییر را برطرف می کنیم. تفکر در باغ، نامی که اجتماع اپیکوری به آن معروف شد، بسیار ترقیب کننده بود. بسیاری از دوستان نویسنده بودند. به گفته دیوگنس لایرتیوس، مترودوروس، دوازده کتاب نوشت که از آنها میتوان به آثار اکنون شده راه حکمت و درباره ضعف تندرستی اپیکور اشاره کرد. مطمئنا در اتاقهای مشترک خانه واقع در ملیت و در جالیز، فرصت‌های مداومی برای بررسی مشکلات با افرادی نه تنها هوشمند بلکه به همان اندازه دلسوز وجود داشت. اپیکور به ویژه این دغدغه را داشت که خود و دوستانش بیاموزند که استراب‌ها و نگرانی‌های خود درباره پول، بیماری، مرگ و امور فراطبیعی را تحلیل کنند. اگر کسی به طور اقلانی به میرایی و فناپذیر بودن بیاندیشد، به نظر اپیکور درمی‌آید که پس از مرگ چیزی جز فراموشی و نسیان وجود ندارد و بیهوده است که از قبل نگران چیزی باشیم که چون فرار رسد مشکلی نمی آفریند بیمعناست اگر پیشاپیش اپیش از حالتی بترسیم که هرگز تجربه نخواهیم کرد برای کسی که واقعا دریافته باشد در مرگ هیچ چیز حلناکی وجود ندارد هیچ چیز هراسناکی در زندگی هم وجود ندارد تحلیل جدی فکر را آرام می کرد. این امر به دوستان اپیکور فرصت میداد تا نگاهی گذرا به مشکلاتی بیاندازند که در محیط غیرفکرانه خارج از باغ فکر آنها را به خود مشغول می کرد و آزار داد. البته بعید است که ثروت زمانی کسی را بدبخت کند. ولی اصل استدلال اپیکور این است که اگر پول داشته باشیم ولی از نعمت دوستان آزادی و زندگی تحلیل شده محروم باشیم، هرگز واقعا خوشبخت نخواهیم بود. و اگر از این سنعمت برخوردار باشیم ولی پول نداشته باشیم، هرگز بدبخت نخواهیم بود. برای تأکید بر ضروریات خوشبختی و آنچه میتوان، در صورت محرومیت فرد از رفاه و ثروت بر اثر بیعدالتی اجتماعی یا آشفتگی اقتصادی بدون افسوس شدیدی از آن چشم پوشید، اپیکور نیازهای ما را به سه معقوله تقسیم کرد. برخی از نیازها طبیعی و ضروری هستند. برخی دیگر طبیعی و غیر ضروری. و تعدادی دیگر نه طبیعی هستند و نه ضروری. نیازهای نه طبیعی و نه ضروری ماننده شهرت و قدرت. نیازهای طبیعی ولی غیر ضروری ماننده خانه بزرگ، حمام خصوصی، مهمانی، خدمتکار، ماهی، گوشت. نیازهای طبیعی و ضروری مانند دوستان، آزادی، تفکر درباره علل اصلی استراب مانند مرگ، بیماری، فقر و خرافه و در نهایت غذا، مسکن، پوشاک. برای کسانی که قادر به پول درآوردن نیستند یا از بی پول شدن میترسند، بسیار حیاتی است که دریابند مطابق تقسیم سگانه اپیکور، خوشبختی وابسته به بعضی امور روانشناختی پیچیده است، ولی تقریبا از امور مادی مستقل است. غیر از پول لازم برای خرید لباس‌های گرم، مکانی برای زندگی و چیزی برای خوردن، مجموع اولویت‌هایی که برای به فکر واداشتن کسانی طراحی شده که خوشبختی را معادل موفقیت ترهای بزرگ مادی و بدبختی را برابر با درآمد ناچیز می دانستند. برای ترسیم رابطه اپیکوری میان پول و خوشبختی بر روی نمودار می گفت قابلیت پول برای تأمین خوشبختی در درآمدهای کم وجود دارد و این قابلیت با بیشتر شدن درآمد افزایش نخواهد یافت. پول بیشتر ما را از خوشبختی محروم نخواهد کرد ولی بنا به تاکید اپیکور در این صورت میزان خوشبختی ما از خوشبختی افراد کم درآمد فراتر نخواهد رفت این تحلیل به درک خاصی از خوشبختی وابسته است به نظر اپیکور اگر دردی نداشته باشیم خوشبخت هستیم چون در صورت کمبود مواد غذایی و پوشاک از درد رنج خواهیم برد باید برای خرید آنها پول کافی داشته باشیم اگر مجبور شویم به جای جاکت کشمیری جاکت معمولی بپوشیم یا به جای صدفهای دریایی ساندویچ بخوریم دیگر نمیتوان برای توصیف این حالت از کلمه رنج بردن استفاده کرد پس استدلال این است که وقتی درد حاصل از نیاز را رفع کنیم ظروف ساده و میز مجلل لذت یکسانی در بردارند دارند. اینکه معمولاً بعضای ارزان قیمت یا گران قیمت را بخوریم ممکن نیست عامل تعیین کننده ی حالت روحی ما باشد. در مورد خوردن گوشت این کار نه هیچ کدام از تنشهای طبیعت ما را برطرف می کند و نه نیازی را که عدم ارزایش به پیدایش درد می انجامد. این کار نه به تداوم حیات بلکه به تنوع لذات کمک می کند. مثل نوشیدن شراب های عجیب و غریب که طبیعت ما کاملا قادر است بدون تمام آنها زندگی کند ممکن است افسوس انگیز باشد که این انتقاد از تجمل را به دامنه‌ی محدود کالاهایی نسبت دهیم که در نظام اقتصادی توسعه نیافته ی یونان دوران هلنی در دسترس ثروتمندان بوده است با وجود این هنوز هم میتوان با اشاره به عدم توازن در نسبت قیمت به خوشبختی در کالاهای اعثار بعدی از این استدلال دفاع کرد ما در ماشینی گران قیمت و لوکس بدون حضور دوستان، در ویلا بدون آزادی، در ملافه های حریر ولی با استراب زیادی که ما از خواب می شود، خوشبخت نخواهیم بود. تا وقتی نیازهای غیر مادی ضروری برآورده نشود، خط روی نمودار خوشبختی سرسختانه پایین خواهد من. برای خودداری از تحصیل آنچه نیازی بدان نداریم یا افسوس نخوردن برای چیزی که استطاعت به دست آوردنش را نداریم، باید در لحظه ای که به چیزی گران قیمت تمایل پیدا می کنیم با موش کافی از خود بپرسیم آیا این کار درست است یا نه؟ ما باید مجموعه ای از آزمایش های فکری را برای تعیین درجه احتمالی خوشبختی خود انجام دهیم. در این آزمایش ها خود را در زمانی تصور می کنیم که نیازها و امیادمان برآورده شدند. این روش تحقیق را باید در باری تمام نیازها به کار بست. اگر آنچه مشتاقانه میخواهم خواهم متحقق شود چه اتفاقی برایم خواهد افتاد؟ اگر متحقق نشود چه اتفاقی خواهد افتاد؟ این روش گرچه هیچ نمونه از آن وجود ندارد باید حداقل پنج مرحله داشته باشد که اگر آن را به زبان کتابچه راهنمای همراه یا کتاب آشپزی شر دهیم بی نکرده ایم یک. طرحی برای خوشبختی مشخص کنید برای خوشبخت بودن در روزهای تعطیل باید در ویلا زندگی کنم دو. تصور کنید که این طرح ممکن است نادرست باشد به دنبال استثناهایی برای پیوند مفروز میان شیء مورد نیاز و خوشبختی بکردید. آیا میتوان توان شیء مورد نیاز را داشت ولی خوشبخت نبود؟ آیا میتوان خوشبخت بود ولی شیء مورد نیاز را نداشت؟ آیا ممکن است پول خرج کنم و ویلایی بخرم و باز هم خوشبخت نباشم؟ آیا ممکن است روزهای تعطیل خوشبخت باشم و به اندازه خرید ویلا پول خرج نکنم؟ سه، اگر استثنایی پیدا شود، شیء مورد نیاز ممکن نیست دلیل لازم و کافی خوشبختی باشد. آیا ممکن است در ویلا تیره باشم اگر برای مثال بدون دوست و منزوی باشم؟ آیا ممکن است در چادر خوشبخت باشم اگر برای مثال در کنار کسی باشم که به او عشق میورزم و او مرا ارج میگذارد؟ چهار برای اینکه درباره پیدایش خوشبختی درست فکر کنیم باید طرح اولیه را طوری تغییر دهیم که استثنا را هم شامل شود امکان خوشبختی من در ویلایی گران قیمت بستگی دارد به اینکه با کسی باشم که به او عشق می‌ورزم و مرا ارج می‌گزارد می‌توانم بدون خرج کردن پول برای ویلا خوشبخت باشم تا زمانی که با کسی هستم که به او عشق می‌ورزم و او مرا ارج می‌گزارد اكنون شاید نیازهای حقیقی بسیار متفاوت با نیاز نامشخص اولیه باشد. خوشبختی بیشتر بستگی دارد به داشتن مصاحبی همدل تا فینای آراسته. تملک بیشترین ثروت تشویش روح را برطرف نمی کند و به شادی چشمگیری هم نمی‌انجامد.